این داستان نوازنده پیر و سپسرش. این داستان را جناب آقای محسن اشیاری از درود نقل کردند. یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس کس نبود زیر گنبد کبود نوازنده پیری بود که با سپسرش زندگی می کرد اون از مال دنیا یه آسیاب دستی یه دول دو و یه سرنا داشت توی عروسیای مردم ساز میزد و آواز میخوند و با پولی که صاحب عروسی میداد زندگیشون رو میگذرند یه روز نوازنده پیر به بستر بیماری افتاد و خیلی زود دار فانی رو ودا گفت انقدر فقیر بود که فقط از مال دنیا یه دو هل و سرنا و یه آسیاب دستی برای پسراش به ارث گذاشت بعد از مرگش پسراش نشستن و برای تقسیم ارث پدر قرعه انداختن دو هل به پسر بزرگ، سرنا به پسر وسطی و آسیاب دستی به پسر کوچیک رسید پسر کوچیک آسیاب دستی رو برداشت و برای کسب درآمد راه سفر را در پیش گرفت. اون رفت و رفت تا به شب رسید و برای حفظ جونش بالای درختی بلند رفت و منتظر نشست تا هوا روشن بشه. نصف های شب با شنیدن سر و صدای از خواب پرید و دید دو تا دو زیر درخت نشستن و سکه های طایی رو که از خزانه پادشاه دزدیده بودند تقسیم پسر از ترس شروع کرد به لرزیدن و یکی از سنگای آسیاب ناقافل از دستش افتاد پایین و خورد سر یکی از دوزا و اونو ناکار کرد دوز دومی تا اومد ببینه چه اتفاقی افتاده سنگ دوم هم از دست پسر سر خورد و یه راست افتاد روی کلش و دوست از هوش رفت پسر ترسون و لرزون از درخت پایین اومد و سکه‌های طلا رو ریخت داخل خورجینش و به خونه برگشت. وقتی پسر میانی دید برادر کوچیکش با آسیاب دستی رفته و با کلی سکه های طلا برگشته، تصمیم گرفت برای کسب درآمد راه سفر را در پیش بگیره. پس سرنا رو انداخت روی کولش و راهی شد. اون رفت و رفت و رفت تا شب شد. برای گذراندن شب وارد کلبه ای شد. و گوشهی گرفت و خوابید. کمی که گذشت با شنیدن سر و صدای از خواب پرید. دید اول شیری وارد کلبه شد. بعد پلنگ، گرگ، روباه و خرس هم وارد شدند. و در و محکم بستن و هر کدوم رفتن گوشهی گرفتن و خوابیدند پسر که خیلی ترسیده بود برای فرج دادن اونا سرنا رو به دست گرفت و محکم شروع به نواختن سرنا کرد و از ترس از خواب پریدن و خودشون رو به اینور و اونور خونه زدن ولی راهی برای فرار پیدا نکردن. همون موقع چند نفر که در حال بردن جهاز دختر تاجر باشی، به شهر دیگه ای بودند. صدای سرنا رو شنیدن و به خیال اینکه تو این کلبه عروسیه برای تماشا به طرف کلبه رفتن و در باز کردند. باز شدن در همون و بیرون پریدن حیوان همون. اونا که تاسوب از ترس توی انبار دویده بودند، بدون اینکه نگاهی به پشت سرشون بکنن پا به فرار گذاشتن پسر که دید جک و جونورا فرار کردن و خودش هم از خطر جسته با دیدن حاملان جهاز شروع کرد به داد و فریاد که ای وای چرا دروا وای کردید با این کارتون خونه خرابم کردید حالا من چه خاکی به سرم بریزم چطور به زندگی ادامه بدم اونا گفتند چی شده مگه پسر وسطی گفت میخواستید چی بشه؟ چرا بی در رو باز کردید و باعث فرار حیوانایی من شدید؟ با هزار بدبختی و با پول زیاد اونا رو خریده بودم. میخواستم اونا رو اهلی کنم و ببرم به قصر و با قیمت خوبی به پادشاه بفروشم. یکی از اونا گفت شما کار سخت و پردردسری دارید؟ اهلی کردن درنده به این راحتی نیست هر لحظه ممکنه جونت رو از دست بدی به جای این کار همراه ما به عروسی تاجر باشی بیا تو عروسی دخترش سرنا بزن و ما هر چقدر که بتونیم به تو کمک میکنیم پسر همراه اونا رفت و هفت شبانه روز تو عروسی دختر تاجر باشی سرنا زد و باعث شادی اونا شد تاجر باشی از خوشحالی بابت مزد برای اون هفت تا کیسه طلا داد. پسر سکه های طلا رو انداخت روی کولش رو به خونه برگشت. وقتی برادرش دید برادرش دست خالی رفته و با دست پر برگشته، تصمیم گرفت دو را رو برداره و برای کسب درآمد راهی سفر بشه. با این تصمیم دو رو توی خورجین گذاشت و به کولش انداخت و راهی شد. اون رفت و رفت. همونطور که می رفت دید سر راهش یه استخون روی زمین افتاده. استخون رو برداشت و توی خورجینش گذاشت و دوباره راهی شد. کم دیگه که رفت لاکپشتی رو دید که اون رو هم برداشت و انداخت داخل خورجین. باز رفت و رفت تا به یه چشم رسید. همین که آب چشمه را دید یادش اومد خیلی تشنه است. برای خوردن آب که خم شد دید یه خرچنگ لب چشمه دراز به دراز خوابیده. آب رو خورد و خرچنگ رو هم برداشت و انداخت توی خورجینش. با خودش گفت بارم یکم سنگین شده ولی شاید خرچنگ هم یه روز به دردم بخوره. بازم رفت و رفت تا به علاق رسید که گرگ حتی استخوناش هم جویده بود. و فقط افسارش دست نخورده باقی مونده بود افسار را هم به خرجینش انداخت و به راهش ادامه داد رفت و رفت و هنگام غروب به کوه بلندی رسید دید پای کوه قصر بزرگیه که درش باز مونده داخل قصر رفت و هر چقدر اینور و اونور اتاقا را نگاه کرد کسی را ندید آخر سر به اتاقی رفت که پر از خوراکی‌های جوراجور بود کمی مغز گردو، کمی کشمش سبز، کمی بادوم و پلو و مرغ بریون شده خورد. شکمش که سیر شد، فکرش کار کرد که نکنه این قصر مال دیو یا قصر جادوگر پیری باشه اگر اینطور باشه که جونم در خطره. بعد از ترسش رفت توی دودکش بخاری و قایم شد و منتظر موند. پسر هنوز سر جاش جا, به جا نشده بود که یه دیو قول پیکر تنور کشان وارد قصر شد هوا رو بو کشید و گفت بوی آدمی زاد میاد نگاهی به خورد و خورا انداخت و فهمید کسی به اونا دست زده پس داد کشید ای آدمی زاد هر کجا که هستی بیا بیرون به چه جرأتی وارد قصر من شدی و به چه حق دست به قضاهای من زدی دیو سر و صدا کنان و بوکشان رفت طرف دودکش داخل دودکش سرک کشید و داد زد هر جا قایم شده باشی پیدات میکنم و درسته قورتت میدم فوری از دودکش بیا بیرون پسر بر ترسش غلبه کرد و گفت ای دیو گنده به زور بازود نناز اگر راست میگی بیا زورآزمایی کنیم تا ببینم کدوممون قوی تریم. دیو زد زیر خنده. وقتی حسابی خندید گفت معلوم جوون خامی هستی و تا حالا با دیو سرشاخ نشدی. برای همین داریم وراجی میکنی. الان نشونت میدم دیو یعنی کی و زور بازو یعنی چی؟ بعد دست برد زیر بغلش شپش یه اندازه بیرون کشید و انداخت طرف پسر رو گفت خوب تماشاش کن تو با این دیو میخوای زرازمایی کنی که شیپیشش اندازه تنه یه قرباغه است پسر که نمیخواست جلوی دیو کم بیاره دست برد داخل خورجین خرچنگ رو بیرون کشید و طرف دیو انداخت و گفت تو هم خوب تماشا کن شیپیش بزرگ یعنی این دیو که دید پسر در مقابلش کم نمیاره از سینش تار مویی و اندازه پنج وجب کند و انداخ جلوی پسر گفت این کوچکترین تار موی سینه منه پسر خنده کرد و دست برد داخل خورجین افسار الاق رو بیرون کشید و انداخ طرف دیو و گفت به این میگن تار مو. دیو کمی ترس برش داشت چون می دید هرچی رو میکنه پسر چند برابرش رو رو میکنه پس برای رو کم کنی اون دست لای موهاش یک کک به اندازه گنجشک بیرون کشید و جلوی پسر انداخت و گفت بیا ببین این ترین کک سر منه پسر باز هم دست توی خورجین کرد لاک پشت رو بیرون کشید و جلوی دیو انداخت و گفت کک داریم تا کک تا چشمش به لاک پشت افتاد، فکر کرد با آدمی زاد عجیب و غریب و بزرگتری طرفه. برای اینکه دل پسر رو خالی کنه، نعره بلندی کشید. پسر هم به کار نشست. چوب دو رو برداشت و با اون محکم روی دو کوبید. چنان صدای محیبی از اون بلند شد که دیواره قصر به لرزه در اومد. وقتی صدای دو خابید خوابید، پسر گفت شنیدی؟ اینم نعره آروم منه. بعد پشت سر هم شروع کرد به کوبیدن روی دوهل. چنان صدایی از اون بلند میشد که دیو نمیتونست چیز دیگه ای رو بشنوه. دیو با شنیدن صدای دوهل جا خورد و از ترس جونش پا به فرار گذاشت. پسرم همه دارایی اون رو برداشت و با دست پر به خونه برگشت پیش برادرش. اونا سال سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صی نشانی کانال تلگرامی، t.m.e. نقط می/ مهران دوستی، T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 dotblackfall.com <متصفح> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی